اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویلو للمطففين به نام خداوند بخشنده بخشایشگر وای برکم فروشان الذين آنان که وقتی برای خود پیمانه می کنند حق خود را به طور کامل می گیرند كالوهم او وزنوهم يحسرون. اما هنگامی که می‌خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن کنند کم میگذارند. الا آنها گمان نمی کنند که برانگیخته میشوند در روزی بزرگ لرب روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می ایستند. گلا این چونی نیست که آنها در باری قیامت میپندارند. به یقین نامه اعمال بدکاران در سجین است وما تو چه سجین چیست؟ کتابوم نامه ایست؟ رقم زده شده و سرنوشتی است حتمی وایلایوم یوم اذل للمکذبین وای در آن روز بر تکذیب کنندگان الذین یکذبون بیوم الدین همانها که روز جزا را انکار می و ما یکذب به الا کل معتد اثیم تنها کسی آن را انکار می کند که متجاوز و گنهکار است ازا تتلا عليه قال اساطیر الاولين. همون کس که وقتی آیات ما بر او خانده می شود می این افسانه های پیشینیان است کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون چنین نیست که آنها میپندارند بلکه اعمالشان چون زنگاری بر دلهایشان نشسته است کلا اینهم رب یومئذ لمحجوبون نیست که میپندارند بلکه آنها در آن روز از پروردگارشان محجوبند ثم این لهم سپس آنها به یقین وارد دوزخ میشوند میشون بعد به آنها گفته می شود این همان چیزی است که آن را انکار می کردید كلا این شنان نیست که آنها در معاد میپندارند پندارند بلکه نامه اعمال نیکان در علیین است و ما ادراک ما علیون و تو چه میدانی چیست کتاب مرقوم نامه ایست رقم خورده و است. قطی یه شهول مقرربون که مقرربان شاهد آهلند ایناب رافی مسلما نیکان در انواع ناحمتند غرون بر تخت های زیبی بهشتی تکیه کرده و به زیباییهای بهشت می نگرند. تعرف في نظرة در چهره هایشان تراوت و نشات نعمت را میبینی و میشناسی من مختوم. آنها از شراب زلال دست نخورده و سربسته ای سیراب می‌شوند. بند مهری ذلك المتنافسون مهری که بر آن نهاده شده از مشک است و در این نعمتهای بهشتی راغبان باید بر یکدیگر پیشی گیرند و این شراب آمیخته با تسنیم است عین یشرب بها المقربون همان چشمی که مقربان از آن می نوشند. اینالذین اجرم در دنیا پیوسته به مؤمنان می خندیدند. و اذا مرو بهم یتغامزون. هنگامی که از کنارشان میگذشتند آنان را با اشاره تماس میکردند. و اینا قلبوا یا اهلیم قلبوا فکهین. و چون به سوی خانه خود باز میگشند مسرور و خندان بودند. و اینا رأوم قالوا اینها یا یلا ضالون. و هنگامی که آنها را میگیدند میگفند. اینها ها گمراهانند و ما ارسنو علیهم حافظین در حالی که هر گز مأمور مراقبت و متکفل آنان نبودند فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون ولی امروز مؤمنان به کفار میخندند علی الارائیک در حالی که بر تخت‌های آراسته بهشتی نشسته و به سرنوشت شوم آنها می نگرند بل کفار ما كانوا آیا با این حال کافران پاداش اعمال خود را گرفتند؟